فصل شانزدهم. در پاییز سال 1934 در عواسته تهیه فیلم اصر جدید یک بار دیگر خطر رو بودن ما باعث زحمت پدرم شد یکی از کارگران استودیو گفت که صحبت های دو نفر به گوشش خورده که شک و سو زنی در رو بودن ما برایش ایجاد کرده است اگر چند روز بعد نامه تحدید آمیزه بدون امضایی برای پدرم نمی‌رسید، او گزارش این کار را به عنوان حرفهای یاوهی میخانه‌ای تلقی و رد می‌کرد. پدرم با شدت عمل معمولی خود شروع به کار کرد. برای ما محافظ استخدام کرد یا لااقل در اعلامیه‌ای که به جراید داد چنین نوشت. زیرا خود ما شخصا هرگز این محافظین را به چشم ندیدیم. همچنین اعلام کرد که استودیو و خانه فراس تپرا مسلح و مجهز کرده و به صورت در درآورده است. من می‌دانستم که پدرم واقعا نگران است. حتی مدتی بعد از این واقعه هر وقت داستانی درباره بچه دازدی در چراغت می‌خواند، ناراحت می‌شد. و وقتی ما بر اثر سهلنگاری با دوستانمان به گردش و بازی مشغول می‌شدیم، واز سر وقت معین شده به خانه نمیآمدیم بعد كه میآمدیم میدیدیم پدرم با نگرانی بسیار روی پلکانها منتظر ماست او با خشونت از ما میپرسید کجا بودید کجا بودید ترسیدم شما را دزدیده باشند مگر نمیفهمید که با این کار پدرتان را از قصه میکشید از سنی که دارد پیرتر شده است و همراه این سخنان انگشنش را با حالتی عصبی به میان موهای زیبایش فرو کرد. موهای او از دوران جوانیش شروع به سفید شدن کرده بودند. از روز شکرگزاری تا عید میداد آن سال پدرم سخت سرگرم کار تهیه فیلم بود. در این میان با عجله سفری هم به نیویورک کرد. اما خوشبختانه من و سیدنی پولت را داشتیم که گاهی به سراغ ما میامد. ما را به مسابقات فوتبال و باقه و گاهی برای نهار به رستوران می برد. این پولت بود که عید میلاد آن سال ما را سر و سامان داد و برای من با پول پدرم هدیه خرید. یکی از هدایایش بسیار به درد نخور ولی در عین حال سرگرم کننده و لذت بخش بود. این یک موتور سرسره بود که با گازالین کار می‌کرد. مطمئنم که وقتی پولت آن را خریده بود در نظر نداشت که خانه ما بالای یک تپه سر و شیب است و اتومبیلها با سرعت از سر پیش خیابان ها و راه خانه ما هم به این خیابان ها می شد. من و سیدنی از همان اول خیلی با این سرسره بازی و تفریح کردیم. این سرسره تحسین و کنجکاوی همه اهل خانه را برانگیخته بود. حتی فرانک و پدرم هم سوار آن شدند. پدرم به آرامی آن را میراند و مثل ما از صدای پت, پت آن لذت می بارد. من و سیدنی نمی توانستیم جلوی خود را بگیریم و کند رفتن پدرم را با این موتور سرسره به شوخی نگیریم. اما ما طور دیگری بودیم. به سرعت آن را از تپه پایین میراندیم و وارد خیابان اصلی می و گاهی اتومبیل های سری و سیر از بقل گوش ما می گذشتند. گاهی اوقات در وسط خیابان پرت می شدیم. یک بار که من به خانه آمدم روی پیشانیم به اندازه یک تخم مرخ ورم کرده بود. پدرم با وحشت آن را لمس کرد و طبق معمول تخیل او سحنی را برایش رسم کرد که جسدهای شده و آلود من و سیدنی به روی زمین افتاده است. از ما خواهش کرد بیشتر مراقب باشیم، اما تهدید نکرد که سرسره را از ما خواهد گرفت. پدرم همراه با سرسختی خود اعتقادات تام و تمامی دارد که برایش در زندگی اشکالات فراوان به آورده است. سرسره مال ما بود و این فکر به خاطر او هم خطور نمی کرد که به عنوان پدر حق دارد سرسره را از ما بگیرد. اَتهی دیگر هم بودند که به دلایل دیگری از موتور سرسره ما نگرانی داشتند. اینها همسایگان ما بودند. خانواده دیوید سلزنیک که خواب صبحگاهی را خیلی دوست داشت و این موتور پرسر و صدا خواب صبح را بر آنها تلخ می‌کرد. آنها بیهوده زبان به شکایت از سر و صدا گشودند و بعدا هم که معلم تنیس پدرم ساعت هفت به او درس تنیس میداد آنها باز هم از سر و صدا شکایت داشتند. بعد از آنکه پدرم با پولت ازدواج باش کرد، گمان می کنم برای سرپرست گذاشتن با خانواده سلزنیک بود که ما را تشویق می کرد رانندگی شیطانی خود را صبح هر زودتر انجام دهیم. کیسمس آن سال تعطیل بودیم. پیش از کریسمس مادرم همه اشتغالات خود را کنار گذاشت و با هواپیما از نیویورک نزد ما آمد تا تعطیلات را با ما بگذراند آپارتمانی در هتل آمباسادور لس آنجلس گرفت و شب کریسمس در آنجا به افتخار من و سیدنی و دوستان من زیافتی داد. من حوادث روز بعد از کلیسمس را خوب به خاطر دارم. زیرا این یکی از موارد نادری بود که پدر و مادر ما را گرده هم آورد. پدرم به دعوت مادرم برای دیدن ما به آنجا آمد. ناگهان دم در آپارتمان ظاهر شد و دستش را به سوی مادرم بهست کرد و با لحنی که گویی دیروز از هم جدابه گفت: «هلو، حال شما چطور است؟ حالی مادرم جواب داد. «چارلی: تو هم سر حالی. من و سیدنی دویدیم و پدرم را بوسیدیم و به دنبال بازدی خود رفتیم. پدر و مادرم با هم حرف میزدند. اما پدرم اندکی آنجا نشست و بعد بلند شد و گفت گمان نمیکنم بتوانم زیاد بمانم چون پالت توی اتومبیل است اگر باگذارم زیاد آنجا بماند ممکن از دل خور شود مادرم گفت چرا دعوتش نمی بالا بیاید؟ پدرم سر پیش خدمت رو خواست و به او اطلاع داد که پالت را به بالا دعوت کند پلت بالا آمد و او و مادرم برای اولین و آخرین بار در آنجا ملاقات کردند. مادرم نیز مانند من و سیدنی و بابا مجزوب پولت شده بود. مادرم اکنون که آن روزها را به یاد می آورد می گوید آدم را خل سلام می کرد. دختر بسیار عجیبی بود. شوختبی و نکته سنجی جالبی داشت با آن لباس مخمل مشکی و موهای بلند سیاه چه قشنگ به نظر می آمد. اگر چه پولت دیگر مادرم را ندید اما سالها با او تماس داشت و نامه‌های کوتاهی برایش می‌فرستاد که نشان دهد او را به خاطر دارد. بعد از اولین بیماری مادرم که برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شد، این پولت بود که برای او بطری شرابی با این یادداشت فرستاد. لیتا، امیدوارم فوراً شفا پیدا کنی. با آرزوی سلامتی تو آیا پولت میخواست به این ترتیب از مادر به خاطر دو فرزندش تشکر کند؟ درست نمیدانم اما مادرم اغلب به دوستان نزدیکش گفته است من از ازدواج چارلی با پولت خیلی خوشحال شدم زیرا او خوب به بچه های من توجه میکرد خیلی به آنها مهربانی مینمود مقداری از وقت و علایق خود صرف نظر میکرد تا به آنها بگذراند آری پولت قسمتی از وقت خود را برای ما صرف می کرد. در ژانویه آن سال مادرم به مشرق آمریکا برگشت تا به اشتغالات هنری خود بپردازد پولت ما را برای تعطیلات طولانی به کوهستان برد و خودش با اتومبیل ما را به دریاچه آروهت رساند آن گردش در سرزمین سفید پربرف و آرام چقدر جالب بود چقدر آن هوا با هوای گرم سر زمین های ساحل اختلاف داشت پالت مثل خواهر بزرگ ما بود با هم برف بازی می کردیم با هم سوار سورت می تمام روز مشغول بودیم و وقتی شب فرا می رسید هر برای خواب آماده بودیم اما از شب خیر گفتم به پالت دلخور بودیم هوا سرد و منطقه دور افتاده بود وزه‌ی باد در هوا می‌پیچید و سوز می‌آمد ما در حالی که پیژاما به تن داشتیم و آن سرما می‌لرزیدیم به اتاق او می‌رفتیم و می‌گفتیم اجازه بدهید اینجا نزد شما بمانیم پالت می‌خندید و جواب می‌داد بسیار خوب ده دقیقه بمانید من و سیدنی توی رخت خواب او می‌پریدیم خوابیدن در آنجا در حالی که دست او به دور تنی ما حلقه بود به آدم آرامش می‌داد برای ما قصه های پریان را می گفت و ما فوری به خواب میرفتیم. سپس از مسافت دور صدای پالت را می شنیدیم که می گفت خب بروید بروید سر جایتون بخوابید بعد آرام ما را تکان میداد و به بیرون راهنماییمان میکرد و من و سیدنی پیلی پیلی می و به رخت خواب خود میرفتیم. ما هیچ وقت تعطیلات زمستانی خود را به این خوبی نگذراندیم اما این دفومی نداشت ما ناچار بودیم از آن جهان رویایی به جهان خاکی خودمان برگردیم ما به مدرسه برویم و پالت به کارش مشغول شود و شایعات روزنامه ها را که مینوشتند بهترین ستاره فیلم چاپلین فرزندان او را به گردش بیرون شهر برده است و درباره مفهوم این گردش قلم‌فرسای می‌کردند بخواند بونت این ماجرا را دوست داشت. در آن سال، در شب دهمین ده سال تولدم، من دچار یکی از بزرگترین ناراحتی‌های دوران کودکیم شدم. در آن سال، من برای اولین بار تقلید پدرم را جلوی تماشاگران درآوردم. البته در خانه، من و سیدنی غالباً تقلید هنرپیشگان سینما مانند هارولد لوید، کلارک گیبل، گرتا گاربا و حتی پدرم را درمی‌آوردیم. پدرم از این کار خوشحال بود و گاهی ما تشویق می میکرد برای مهمانان او نمایش بدهیم. اما این بار وز جور دیگری بود. این بار روی صحنه در برابر تماشاچیان واقعی در ابل ابله آنجلس باید نمایش میدادم. من و سیدنی به یک مدرسه می میرفتیم و بچه های مدرسه نمایشی ترتیب داده بودند که در آن به شکل اشخاص مختلف ظاهر میشدند. من یک بار نقش ولگرد کوچولو را بازی کردم. بعدن همه میگفتند گفتفتند که بازیم خوب بوده است اما من میخواستم این تحسین را فقط از یک نفر بشنوم از خود ولگرد کوچولو نمیدانم کسی متوجه بود که من در میان هزاران چهری ساگدار تماشاچیان دنبال یک چهره آشنا میگشتم یا آنکه گوش میکردم که صدای خنده بلند و پرتنین او را بشنوم بعدا فهمیدم پدرم که قرار بود به آنجا بیاید به علت کاری فوری از آمدن خودداری کرده است او بعد از آنکه دانست تقریدم خوب بوده است خوشحال شد و از هایی که دیگران میکردند راضی بود اما این به معنای آن نبود که خودش آنجا باشد و مرا با چشم خود ببیند با آنکه بعدا فهمیدم پدرم به علت کار فوری نیامده است نتوانستم از احساس ناراحتی خود جلوگیری کنم در این موقع او شب و روز خود را در استودیو می گذارند. مسئله را به این ترتیب حل کرد که با تمام دم دستگاه خود به استودیو رفت. جورج آشبز را هم همراه برد. بالاخره پس از دو ماه فعالیت شدید کار تحیه فیلم اصر جدید به پایان رسید. پدرم چون از جوش و خروش کار فراغت یافت فهمید که روابطش با همه آشنایان بریده شده یال و اقل، به بدی گراییده است از همه سخت‌تر وضع پولت بود پولت در جریان تایید فیلم تسلیم کمال‌طلبی پدرم شده بود در جزئیات از دستور او پیروی کرده بود تا تیپ محبوب دخترک فیلم عصر جدید به وجود آید اما پولت به عنوان یک زن واقعی به چیزی گرفته نشده بود او که از این آزمایش سخت و طولانی خسته بود، ظاهران بایستی این احساس را داشته باشد که از دست معلم خود خلاص شود و به میل خود زندگی کند. روزنامه ها شروع به چاپ گزارش هایی کردند که او را در اطراف شهر با مردان دیگر دیدند. این جریان طبعاً به برهم خوردن روابط منجر می شد. اما برهم خوردن چه روابطی؟ حتی حالا که ظاهراً همه چیز به پایان رسیده بود، خبرنگاران روزنامه ها چه چیز برهم خورده است. ازدواج، نامزدی یا یک ماجرای عشقی. خوشبختانه من و سیدنی شایعات روزنامه ها را رو نشنیدیم. در این زمان پالت برای ما مفهوم دیگری پیدا کرده بود. در یکی از تعطیلات که روزنامه ها خبر قطع روابط او را با پدرم منتشر میکردند او آمد و ما را با خود به گردش برد. و وقتی برگشت، بار دیگر او و پدرم در همه جا با هم دیده میشدند. این پولت بود که به تقاضای پدرم به ملاقات هربرت جورج ولز، نویسنده‌ای نامی انگلیس که به آمریکا آمده بود، رفت. پدرم هنگام سفر به انگلستان مهمان ویلز بود وکنون به بازدید او آمده بود. او دو سه هفته در منزل پدرم گذراند. من او را به یاد دارم. سبیل های مانند سبیل های شیر دریایی داشت و طرز رفتار و گفتارش کاملا انگلیسی بود. چون من و سیدنی جوان بودیم خیلی تحت تحصیل او قرار نگرفتیم. به نظر ما او هم مانند یکی از دوستان نویسنده پدرم برای ما مزاحم بود. زیرا در دوران اقامتش اتاق ما را در اختیار او گذارده بودند و تا موقعی که در آنجا میماند نمیتوانستیم شبها را در خانه بالای تپه بگذ اگرچه فیلمبرداری برداری فیلم به پایان رسیده بود، پدرم هنوز داشت موسیقی آن را تکمیل می کرد. تنها گذشتی که پدرم در این فیلم به سینمای نابتق نشان داد این بود که برای آن موسیقی گذاشت. چند کلمه برای پخش شدن از بلندگو با یک آواز خوشمزه و بی سر و ته که خودش آن را می در پایان آن چاداد. او به من گفت که گذاشتن آن آواز برای آزمایش صدایش روی پردی سینما بوده است. پدرم قسمت موزیک در استودیوی خود نداشت و ناچار بود برای استفاده از نوازندگان و اتاق ضبط صوت به شرکت یونایتد آرتیست مراجعه کند. اگر افراد استودیوی خودش از تمایل او به کمال فقط رنج می بردند، نوازندگان و موسیقی دانان United Artist که با پدرم کار می کردن شکنجه می دیدند. پدرم خودش نمی تواند نوت یک قطعه موسیقی را بخواند، اما می داند که چه می خواهد. وقتی که صدایی به نظر او مناسب نمی آمد، معامله نبود تا آن را درست و مناسب کند. بعضی از موسیقی دانان برجسته ی عالم سینما به او کمک می کردند. آلفرد نیومن که چند جایزه اسکار برد و در آن زمان با سام گالدوین قرار داد داشت برای رهبری موسیقی فیلم انتخاب شد. دیوید راسکین آهنگساز جوان که بعداً به علت آهنگهایش معروفیت یافت استخدام شد که با همکاری ادوارد پاول موسیقی پدرم را یادداشت و برای ارکست تنظیم کند. پدرم همه آنها را خسته کرد. ادوارد پاول چنان به کار یادداشت کردن موزیک پرداخت که تقریبا دید چشمانش را از دست داد و ناچار به مراجعه به چشم پزشک شد. دیوید که به طور متوسط روزی بیست ساعت کار می کرد بعد از مدتی دوازده کیلو لاغر شد. و چنان فرسوده گشت که توانایی به خانه رفتن را نداشت و شبها روی کف استودیو می خوابید. آلمی من یک روز او را دیده بود که در خیابانهای استودیو می, گردد و عشق می اما دیوید هنوز تا به مقاومت فراوان داشت و برای سبک کردن بار فشار کار گاهی با پدرم شوخی می کرد پدرم یک ماشین ضبط صوت شبیه دیکتافون داشت که آهنگهای خود را در آن زمزمون زبط می کرد به این ترتیب می ساعت ساعتهای بیشتری کار کند و آهنگهای خود را آماده سازد تا به دیوید راستکین نشان دهد دیوید یک روز به عنوان شوخی قسمتهایی از کانسرت و گست بوم پروکوفیف و از سمفونی اول شستوکویچ را در ماشین زبط کرد تا پدرم را دست بیندازد اما آنچه دیوید انتظارش را نداشت آن بود که بعد از ظهر آن روز پدرم استودیوی خود را به ای از مهمانان برجسته از جمله الکساندر ولکوت، هربرت جورج ویلز و کینگ ویدور نشان میداد. پدرم با افتخار تمام به طرف ماشین زبط صوت رفت و گفت من به این ترتیب آهنگای خود را میسازم و دستگاه را به کار انداخت. وقتی صدای موسیقی شاستاکوویچ بلند شد، پدرم نیم متر از جا پرید. بعد نگاه طولانی و معنیداری به راسکین انداخت و برایش خط و نشان کشید. تنها عکس عملی که در برابر این شوخی نشان داد، همین بود. بالاخره آل نیومن زیر فشار در هم شکست. در حالی که بعد از تغییرات فراوان، سر و کله زدن شبان روزی فقط شست متر نوار برای آنکه ضبط و پر شود باقی مانده بود، اعصاب او چنان ناراحت شده بود که گفتی زیر شکنچه قرار گرفته است. یک روز بالاخره از جا در رفت و هرچه فوش از دهنش در میآمد نسار پدرم کرد و برای تاکید آن فوش ها رهبری ارکستر را از صحنه به بیرون پرتاب کرد. بعد بیرون رفت و به آپارتمان خود در نزدیکی صحمی ضبط صوت داخل شد و یک بطری ویسکی بالا اندخت تا اعصابش آرام شود و به گولدوین تلفن کرد که به او بگوید کار را رها کرده است. او با وجود خواهشها و فشارها به سر کار خود برنگشت و آنها ناچار شدند یکی دیگر را به جای نیومندی بیاورند. اما بالاخره تمام این موانع برطرف گشت. و موسیقی فیلم تهیه و زنده شد. اکنون آخرین مرحله فیلمسازی و به قول همه تهیه کنندگان دشوارترین آن فرارسیده بود. این آن دوران نامطمئنی نیست که بین تکمیل فیلم و نمایش آن برای مردم وجود دارد. استراب این مرحله شبیه استراب ای است که برای اولین شب روی صحنه میآید برای این استراب باز هم شدیدتر است. زیرا هنرپیشه پیشه امکان دارد تا هنگامی پرده میافتد افتد، کاری کند و تماشاچیان سختگیر را تحت تأثیر قرار دهد. اما فیلم یک محصول کنسرف شده است. وقتی علاقه ای از طرف تماشاچیان ابراز نشد، نمی تواند جدیدی در آن بازی کرد یا قسمتی از آن را اصلاح نمود. آنچه در ماه پیش تهیه شده است، ممکن است سبب ترقی یا سقوط هنرپیشه و فیلم ساز شفت. با اختیار این ترقی یا سقوط در دست تماشاچیانی است که هیچگونه تماس شخصی به آنها موجود نیست. پدرم یک بار داستان اینکه چگونه چنین تماشاشیانی تماشاچیانی او را پریشان اند برای من گفته است. نمایش مقدماتی یکی از بهترین و محبوبترین فیلم های سامت او بود. این فیلم در تئاتر قدیمی بلاسکو واقع در محل مکزیکی‌های های آنجلس نمایش داده می‌شد. من نمی‌دونم چرا تئاتر بلاسکو را برای این کار انتخاب کرده بودند. شاید تصور میشد که تماشاشیان آن از طبقات عادی مردم هستند و میتوانند نماینده افکار عمومی باشند. قبل از نمایش، کارتهایی بین یک عده از افراد پخش و از آنها خواسته شده بود که عقیده خود را درباره فیلم بنویسند. پدرم نمیتوانست منتظر رسیدن کارت‌ها شود. تصمیم گرفت به طور ناشناس به تئاتر برود و شخصا نتیجه نمایش فیلم را بررسی کند. او می گفت جرایم من سه نفر مکزیکی بودند. هر سه آنها ساکت و دست به سینه نشسته بودند. فکر کردم وقتی فیلم شروع شود جابجا جا خواهند شد اما آنها مثل تخت سنگ همانطور نشستند. ترس برم داشت. نگاهی به سایر تماشاچیان انداختم. نفس از هیچ کدامشان در نمی آمد. حالم به هم خورد. پا شدم و به اتاق استراحت رفتم. در اتاق استراحت با خودم گفتم نباید قضیه از این قرار باشد. دوباره به سالن برگشتم. اگر از دیوار صدا در میآمد از این تماشاشیان هم صدا در میآمد. دیدم سه نفر مکزیکی درست مثل سابق دست به سینو بی حرکت نشستند. توجهی مرا به خود جلب کردند. زیرا در تمام مدت اصلا صورتهایشان تکانی هم نمیخورد. ناچار شدم دوباره به اتاق استراحت برگردم. در جریان فیلم چهار پنج بار به سالن سر زدم. هر بار به این امید باز میگشتم که مکزیکی‌ها را در حال خنده و تماشاچیان را در حال تحسین ببینم اما خبری نبود. در سرسر فیلم من حتی یک خنده از تهح دل ندیدم فقط چند نفر گاه و بیگاه لبخنده محتاطانه ای می زدند. برای اینکه بعد بدبختی هم کامل شود در حدود سه چهارمه فیلم نمایش داده شده بود که مکزیکی ها یک بار رسوله من بلند شدند. خمیازه کشیدند، دهن ری کردند و بیرون رفتند. دیگر طاقتم تاخ شده بود. من هم پشت سر آنها بیرون رفتم. با در عصبی به خانه رفتم. تنها کاری که میتوانستم بکنم این بود که دعا کنم اقلن چند نفری از این فیلم خوششان بیاید. آخر بیش از یک میلیون دلار خرجان کرده بودم و ناچار بودم دعا کنم. وقتی که کارتهای اظهار نظر تماشاچیان جمع شد پدرم حیرت کرد. زیرا بیشتر تماشاچیان فیلم را بسیار تحسین کرده بودند. پدرم فقط میتوانست به این نتیجه برسد که مکسیگی ها به عنوان یک ملیت خنده بال بلکه فقط لبخند میزنند یا خنده فروخورده فرو خورده میکنند. به همین ترتیب پدرم برگ فیلم اصر جدید نگران بود. گمان میکنم تا هنگام شروع فیلم هر شب قرصه، آلکاستردزر و لیوان آبی میخورد. متقدان سینمایی برخلاف فیلم های سابق چندان شوری نشان ندادند، اما ظاهراً تماشاچیان آن را دوست داشتند. فقط در آمریکا این فیلم دو میلیون دلار فروش داشت و این رقم برای که دوره بلافاصله پس از بحران اقتصادی رقم قابل توجهی بود اطمینان حاصل شد که ولگرد کوچولو در سینمای ناطق هم میتواند خود را حفظ کند و حالا منتقدان که شکست معیوسانه این فیلم را پیشگویی کرده بودند شروع به حدس و گمان درباره علل موفقیت آن نبودند تایی کنندگان و کارگردانان به مطالعه تکنیک آن پرداختند که ببینند آیا برای اصلاح فیلم خود می توانند از آن استفاده کنند یا نه. دیگر به پدرم به عنوان یک قهرمان سابق کمدی نگاه نمی کردند. او هنوز سلطان کمدی بود. اما برای پدرم همه چیز مربوط به فیلم اصر جدید چیزی مربوط به گذشته بود. نمی خواست باز درباره آن بحث کند حتی بیاندیشد. مغز جوشان او در جستجوی چیزی تازه و همه بود که بتواند روی آن متمرکز شود. از این جهت ترتیب سفر به مشرق زمین را داد. در سفر قبلیش به دور دنیا تحت تاثیر مشرق واقع شده بود. اما این بار نمی تنها سفر کند. پالت به اتفاق مادرش خانم کلتا او را همراهی می کردند. پدرم برای کسانی که شایسته تحسین بودند به هیچ وجه خستت نشان نمیداد. برای قطرانی از بازی عالی پولت در فیلم یک قطعه جواهر گرانبها به او هدیه داد. اما این مسافرت پاداش اضافی بود و پولت از فکر این سفر مانند کودکان به حیجان آمده بود. در ماه ففریه من و سیدنی با آنها خداحافظی کردیم. و آنها به اتفاق فرانک صدیق و وفادار با کشتی به سوی هونولولو به راه افتادند از فکر اینکه چه جاهای قشنگ و عجیب و غریبی را خواهند دید بر آنها حسادت و از اینکه ما را در مدرسه سربازخانه مانندمان تنها گذاشته احساس قربت می‌کردیم اما در سفری که به احتمال قوی سفر ماه اصل است کی کودکان را همراه می‌برد لااقل تمام روزنامه ها اینطور پیشبینی میکردند و پول تو پدرم نه موضوع رو تایید میکردند و نه تکسیب